جلسته سی و پنجان و این بحث رو ما در هر دو کتاب قبلی ما مفصل کنیم از جهت مخصوصه به مدفوزن دشت هرکی دشت این که قائلشون چه چیزهایی میتونه باشه که اعداد دل هاش بحث ده بحث, بحث جدیدی بیست. فصلون فی افال ذی مدہ به زمن در افالی که انشاء مد یا انشاء زم میکنند اپال میگه این افالی که باعث شدن برای مد و زم افالی هستند که افال روزعت به انشاء این مدین او زم وضع شدن برای انشاء کردن یک مدهی یا یک زمین یعنی شما قبل از اینکه شما قبل از اینکه نعمر رجل و زیدان بگی مدحی در کار نبود به محض اینکه نعمر رجل و زیدان رو گفتید انشاء مد کردید یعنی مد رو ایجاد کردید مدح او شد لذا پس بنامد این اینها صيغه های انشاء هستند و اگر جواب شرط واقعاشن نیاز به با دارند ان توب دو صدقات بن ام ماهیه ان توب دو از صدقا بن ام ماهیه همه آیات کتاب ندایق الان ببینید این تو دو صدقات تو دو صدقات بله شرطه این فن ام ماهیه جزای شرطه نعمه ماهیه بوده دیگه شده نعمه ما اومده فن ام ماهیه در جزای شده شا... چون جبه انشاییه افعالون بزرد لین شای من هنه او زنه من این بعضیه پس بعضی از این افعال نعمه هستش و برسه نعمه و برسه و ساقه یکی هم ساقه هر سه یه حکم داره یکیش بکر نثال بزنیم اون یکی ها هم مشتمه و کلون منه ها گرفه او و هر یک از این ستاره شما در نظر بگیرید رفت میدن به یک فائل گرفه او فائلن حالا اون فائل باید چی باشه؟ معرفاً به که معرفه باشه به علی جنس فائلی که معرفه ای به نِعْمَ عَرَّجُلُو نِعْمَ الْمَوْلَا و نِعْمَ نسیم الْفْلَام او مضافن الى معرفن یا فائلش اسمی که مضاف است به سوی اسمی که معرفه به هاست یعنی خود فائل الْفْلَام نداره اما مضافن اله ایش داره نِعْمَ غُلَامُرْغُلَجُلِه نعمه غلام و غلام شده فایل اما غلام اضافه شده رنگه شده حالا اگه به جهر رجا زید بود نمیشد دیگه فایل بشه نمیشه بگیم نعمه غلام و زیده یا تو... زمینن مستترن یا فایلش میشه یک زمینه مستتر مفسرن به تمییز که این زمینه مفسر و مبینش یه تمیزیه که که یکی از موارد عود زمیر به ملجه متأخر لفتی و رتبه ای هم همین مثال همینجا ده نعم رجولن زیدون نمودیم نعم افیل زمیر فائلش اون زمیر به کی برمیگرده این رجولنی که تمیزش برمیگرده آه نعم رجولن او زمیرن مستطرن مفسرن به تمیزه صحبه سپس بعد از اینکه که فایلو برداش یو ذکره سپس مذکورش بعد از او مخصوصه یعنی اونی که ذکر میشه بعدش مخصوصه یا مخصوصه به مد اگه بعد از نیمه باشه یا مخصوصه به صحبه یو ذکره مخصوصه مطابقا للفایل و این مخصوص همیشه مطابقه فایل بود. در افراد و تسلیه و جمع و مزکریت و ماهند مطابقاً لِل فایل تخصه و یوج علو حالا این وقتی شما گفتید نِعْمَ اَرْرَجُلُوَ زَيْدُونَ نِعْمَلَ عَبْدُوَ عبدو يُو اینطور گفتید چجور این تحکیب میکنید؟ میگه یوج علو مبتدهند قرار داده می شود این مخصوص مقتده ما یوج ال مقتده اند مقدمال خبره قرارش میدیم مقتده که خبرش چی شده؟ مقدم چون خبرش کیه؟ نعمق وجل خبر مقدم زیدان مقتده ما و گفتیم عموم در اروجل که حال جنسه این امونیت که شامل زیدم هست خودش میشه رابطه جمعه خبر به رابطه جمعه خبر به یه ترکیب یا یوج و خبرن از وجه مقتدر قرار داده میشه این مخصوص خبر خبری که محضور ولی مقتدر سلام ده. خبری که مبتداشتی شده؟ اون خبرن محذوف بل مبتداه خبری که محذوف از مبتداش به شکل وجوبی واجبه که ارزش بشه بود نعم الرجل هو زید. و بعد این صورت ما به جای که یه جمله داشته باشیم چند جمله داریم دو تا یکی نعم الرجل و یکی هو لا نه مال مراته مثالی که میزنه مانند نه مرعف و هندون اینجا میشه بگی نه مرعف و هندون و میشه بگی نه مرعف و هندون با اون که مهندس حقیقیست چیزی هم فاصله نکرده جایز از شما مذکر بگید جایز از مهندس بگید به چه دلیم گفتیم؟ به دلیم این که به این دلیل اگر مهندس میاریم به دلیلی این که ظاهراً فایلش مهندس و اگه مذکر میاریم چون علفلامش علفلامه جنس و کلمه جنس مذکر اینگاه رفته نیم از جنس باییم و, و به اصن نسا و رجله اینجا خواهد خودش ما اولفلام بود در اینجا نگاه کنیم به اصن نسا و رجله الهنده اینجا مزاف چی؟ به چیزی که دارای علفلام به اصن نِسَا اُرْغْ وَجُولَ الْهِنْدَا ترکیبات مشخصه دیگه این دوتا ترکیبشو یه جوره میتونیم بگیم هند مقتدای معقد نِعْمَلْ مَرْعَتو خلاله مقدم و میتونیم بگیم نِعْمَلْ مَرْعَتو یه جمله پیه هندون یه جمله دیگه وحیت مقتدایی بوده واجبون هست انگار اول گفته نِعْمَلْ مَرْعَتو جنس زن خوبه انگاه چه که از سورا و گفته دو به اصل نسا رجل الهندان مثال سوم باز زمیر آورده شده به عنوان فایل سا رجلن زیدون اینجا میگی ساعفه زمیر فایلش رجلن همیزش رسم ثبانی که زد مخصوص حالا مخصوص یا خودش محتدای ما یا خبر است برای یک مبتدای واجب و برسته سا ال و من یکی دیگه از افعال محسوس هم ها هفتر و لا هفتر حالا دیده که حتما اینها با چی با زا. اینه زا برای من لا هفت برای بروشو. و هما که نعمه اینها از نظر معنا که نعمه و بعصه مثل نعمه هست اولی و مثل بعصه هست بگی دوبومی اولی هفت میشه مثل نعمه هست مرد لا هفت میشه مثل بعصه هست میگه ول فایل مطلقا فایلش زاست به طور مطلق یعنی چی به مطلق یعنی به هیچ وجه تصنیه جمع، مهندنس، مذکر هیچ چی نمیشه اگرچه مخصوصش چی باشه؟ برخلا ایزا همیشه مفرد مزاکره و هیچ موقع تصنیه زانه نمیشه جمع ها نمیشه مهندنس حاضیهی نمیشه به هیچ وجه اگر حتی مخصوصش موسنا یا جمعه شد ول فایلوزا مطلعه و بعد ها ها المخصوص و بعد از این حب بزا چیزه که میشه بعد از حب بزای فایلش ها المخصوص بعد ترکیبش هم مثل ترکیب نیمه ها میگه حب بزا خبر مقدم زینان محتلعی مؤخر یا میگه حب بزا خودش یه جمله و زینان خبر برای محتلعی واجبان فرقشوش. همین دو لاحف بازه حالا مثلا اگر هند باشه باز میگی هب بزا هنده نمیگی هب بزا هب بزا. بزا هندان باشه میگی هب بزا هندام. هب بزا الهندان هندات باشه هب بزا هندات. فرقی؟ ندارد هب بزا همون زا زاست مطلبا که با معنی چه با مذکر چه با مؤنث چه با تثنیه و لکا اما جایز است اینجا لکه ان یا قبله و بعده او بعده او به تمییزن او حال اینم با تو این اما جایز است قبلا است مخصوص و لک ان تحت یا قبله هست. یعنی قبل از مخصوص جایز است برای تو اینکه بیاوری قبل از مخصوص یا بعد از مخصوص بیاوری تمگیزی را به بای تحریه است تمگیزی را یا حالی را یه حال بیرید لکه قدر مقدمه انتعتیه مستر محبت مقدره محمد سلام لکه انتعتیه قبل او بعده به تمگیزم او حال علا بفقه یعنی علا متابقته بر وفق و مطابقت مخصوص تمیز بیارید طبقه یا حال بیارید طبقه اون مخصوص نهانی با خودید حب از زیدان این مثال برای حب بزاست ببینید زاست با اون که مخصوصش چیه؟ از زیدان حب بزا زیدان راکبند این مثال برای حاله و کجا زید شده؟ سلام منید بعد از اون راکب مشتق است به یعنی بهبه چه خوبه در حالی که راکه و حب بزا امراتن هندون ای تنیزه. از این تمیزه یعنی بهبه چه زنی است از جهت زن بودن هند امراتن منظور تمیز کجا اومده قبل از هند. حالا ممکنه امراتن بره بعد از هند بشه چی هفت بزا همدون و ممکنه راکبن بیاد قبل از زید بشه هفت بزا راکبن ها تمیز چی حال است برای زای فائل و امرهتن تمیز است از برای نسبت هفت بزا که شما میگی این خیلی خیلی خوبه به چه خوبه از چه جهت میگی؟ ا و از این جراح فعل لا التعجبه در این دو فعل تعجبو میکنیم کدوم یکی ما, ما افعله و یکی افعل ما و افعل به فعلان دو فعلن آل وز ال انشاء تعجب اینا وضع شدن برای انشاء چرا چون شما تا موقعی که نگفتید ما احسن زیدن تعجبی در کار همین که گفتید ما احسن زیدن ایجاد تعجب شو تعجب در عالم به وجود اعلی از ترجمه به اعلان وزع ال انشاء تعجب و هما و این دو تا کلمه ما احسن و عقل یکی ماعف علهو و یکی هم عرفه ولا یبنیانه و ساخته نمیشن این دو تا سیغه الا مگر مما یبنا منهو اسم و مگر از چیزی که از او چیز درست میشه اسم تفسیر که چه چیزی؟ چه چی شرایطی باید داشت؟ اولا فعل بود و ثانیا سراسی بود سبب و من مجرد بود چهار و من تام بود بدون استثنا یعنی بعد متصرف بود بعد مثبت بود بعد قابل تفاضل بعد معلوم بود بعدم افعال برا غیر تفضی نداشت این شرایطش بود دیگه همه این شراحیت در اینجا هست چنده شرک شد, شد؟ بر باشه یک سلاسی دو مجرد سه تام چهار یعنی دیگه از کانه ساخته نمیشه متصرف پنج یعن نعمه ساخته نمیشه مثبت باشه شیش قابلیت تفاضل داشته باشه هفت افعل درایی غیر تفصیل نداشته باشه هشت معلوم باشه مچهول نباشه میشه چی؟ اینها شرائطی بود که از افعال تفصیل به طور مختصر ما دانستیم یکی دو تاشون شماسی که قبلا نکنونده بودیم مثلا اینکه که نباشه معلوم باشه یا اینکه مثبت باشه منفی نباشه اینها شرطایی که روز ما فکرمتون باشیم اینا کل شرایطه همه این شرایط در افعال و تفصیل هست در افعال تعجب هم بگیر ولا یبنیان و اینا ساخته نمیشن الا ما یبنام این اسم حالا اگر یه جایی یکی از اینها این, این شرایط رو نداشت یه شرط یا دو شرط رو نداشت چیکار میکنی؟ در اونجا چیکار میکردیم؟ از عشب دو اکثر رو اینجور چیزها استفاده میکردیم اینجا هم و یتوصل الی الفاقده به اشد و اشد به و توسل میشه رسیده میشه به سوی چیزی که فاقده یعنی لبسی که فاقد این شرایده ما یتوصل به اشد و اشد به با اشد کارمون رو ردا میندازیم یا اشد مثلا حالا اگر ما مثلا از سرخی یک چیزی تعجب میگی ما اشده همرته بود ما اشد همرته ما اشده رو میاریم بعد اونی که قرار شرط رو نداشته باشی بشه که منصوب بعدش ما اشده حالا اگه با اشده تاییم میگیم چی؟ به مثلا از قلطیدن یه نفر تعجب کنیم از دهرجت بگیم چی؟ ما عشد در ده دهرجت هون و عشد بگید به ده دهرجت هست هست پنابراین و یوتوثل و علال به عشد و عشد و لا یوتصرف و فیه این دوتا فعل جامدن و هیچکونه تصرفی در اینها ما احسنن هیچ وقت ما احسنت نمیشه ما احسنا نمیشه احسنم هیچ موقع احسنا با احسنو شو. یه و احسنون نخواهد شد. شده شده نه؟ هیچ تغییری در اینها ولای و تصرف او به ما حالا ترکیب خوب گوش کنید ترکیبات اینها مهمتر از هر چیز در ما احسن زیدن ما سه ترکیب خدمت شما عرضه کردم در ما احسن زیدن ما سه ترکیب رو گفتیم یک گفتیم ما مایه استفهامیه باشد و در معنای تعجب بکار رفته باشه و احسن احسنف زمیر فائلش که برمیگرده به ما زیدن مفعولش و این جمله خبر ما. البته هر کی به دوم بگیم ما نکره است به معنای شیء ما نکره است به معنای شیء و اگر مبتدا شده موصوف ابتداییتش صفت محذوره موصوف ابتداییتش صفت مقدره صفتی که یعنی صفت معنوی مقدر یعنی بوده ما یعنی شی اون چون چیز کوچکی باشه که آدم تعجب نمیکنه حتما با شی بزرگی باشه عظیم باشه شی اون احسن اون احسل و از شیعان از این منصفت مصوب شیعانش مقتداست احسن از اینن جمله هم این ترکیبیه که آقای نشان پسند بوده صاحب کتاب چون ما مقتدا باز ولی فقط برقش با صورت اول چی بود؟ صورت اول مای استفهامیه بود خودش به خاطر استفام بودن مخصص بود این یکی از چیزهایی که مخصصه اینه که استفام در مقتدا وقاضیش به خاطر استفهامش مخصص بود این یکی چون به معنای شی بود مجبور شدیم یک سفت هم بگیم باشه با مخصص برای ابتداییتش مجعل این دو تا ترکیب سوم بالا آقای ابوالحسن اخفش آقای اخفش میگه ما ما موصول است به معنای اللذی مقدمه است احسن زیدن فعل و فایل و مفهوله و فایلش هم آید سلست و این جمله سله ماست این جمله سله مای موصوله مای محصوله هم که بکنیم چی؟ مفهده و خبرش چیه؟ در تقدیر خبرش در تقدیره بوده ما یعنی الَّذی الَّذی احسن زیدن اللذی احسن زیدن شیعان <الزی احسن زیدن شیعون> <الزی احسن زیدن شیعون> این هم تحکیب سه حالا ببینیم که شیخ شیخ بها رحمتون الله علی خودون یک از این سه تحکیب رو میگه و با کدام یک ما که تحکیب ها رو به شکل مرتبش ذکر کردیم اولی از همه بهتر بود که کردیم که مرحوم رو قبول کردیم ترکیب درگون رو ذکر کردیم که ابن شام قبول داره و ترکیب سرگون رو هم آقای حالا نگاه کنیم و ما مبتدا اون اتفاقا ما مبتده است به طور اتفاق یعنی چی؟ یعنی هر ستا قول میگن ما چیه؟ مبتده است دیگه نه؟ فقط اولی میگفت ما چیه؟ استفامی است و مبتده دوباری میگفت ما؟ نکره از تو محتدار صفت داره سبونه میگه ما موضوعه است تو همه و محلا منصول و به معنی و قال آیا این به معنای شیعونه و یه صفت هم در تبدیل که به عنوان که مفسسش باشه و مابعده ها خبرو ها میشه باشه خبرش یه تجور دوم شعی باشه و هم عظیم هم در تردیقش داشته باشه و ما بعدش خبرها این یک او موصولتون یا یعنی اینکه که باشه موصوله باشه و ما بعدها سلتوها ما بعدشان هم چی باشه سلش باشه ولی خبرها محضوب کن و خبر چی باشه محضوب باشه چند چنده شد دو تا قول سفرم رو که قول سهیل بوده توی عبارت مرکوم شیخ زه نه که یا باید میگو او ما استفهامی یتون او ما یا هیه استفهامی یتون و ما بعدها خبرمون ما بعدش هم چی؟ خبرش این ترکیب سفرم میگه و هل به بمعنى شيء و ما بعدها خبر و ها او موصولتون و ما بعدها صله ول خبرو و الخبر و خلاف میگه در این سطر اختلاف به قول زي كريم قلموها میگه در این سه قول اختلاف این مال ترکیب ما حالا میایم سر ترکیب فعل به یعنی احسن بزيد احسن بزید. گفتیم که احسن به زیدن رو اینطور تحکیف میکنیم به باش میگیم بای زائده لازمه به باش میگیم بای زائده لازمه زایده یعنی مفید معنایی نیست لازمه یعنی حد چیه؟ احسن فعل و زید چیه؟ بایدشان احسن فعله و زید باعش احسن هیکلش، هیکل فعل امره احسن، هیکلش، هیکل فعل امره ولی واقعا به شکل مازیست همون احسنه بوده. چون هیکلش به شکل امر بوده باعدش رو دیگه به شکل مرفوع نگیگوردن باعش رو دیگه به شکل مرفوع بعدش نهی بردن چرا؟ به دلیل اینکه به دلیل اینکه چون خیلی هم نبیتونه یک اسم ظاهری رو چکار کنه حالا که بگیم ازرب زیدون این هم چون هیکلش هیکل اهم بوده زشت بوده بود که بعدش ما چکار کنیم یک فائل مرفوزه کنیم به حاله حیکلش مجبور شده این فائلش چکار کنیم مجرور کنیم بردجه حتی به شکل مخبول به یعنی به شکل واسطه دار رو گفتیم؟ گفتیم احسن فعل است هیکلش عمر است معناش ماضیه یعنی واقعا ماضیه زید فائلش بوده و چون بعد از چیزی که ظاهرش عمره بخواییم اسم ظاهری رو رفت بدیم درست نبوده مجبور شدیم یه بار جرابوردیم و گفتیم این با چیه زائده لازمه معنای ایجادم اول لازمه حاصل خاطرینه که این زشتی رو که فعل هم به خاطر رث به اسم زائد رو ده. این ترکیب صحیح حالا ببینیم ترکیب غیر صحیح میگم یعنی غیر صحیح که ترکیب دومی رو که به اندازه این صحیح نیست رو همزک میکنیم میگه و ما بعدل با بائفه ما بعد با فائل است و مرفوع است محللا سی نزدیکی آیسی و این با همش میگن باع لازم و اگر این فائل باید با داشته به خاطر اینی که اون فعلش شکل شکل است و چیزی که شکل شکل است قادر به رفت دادن در اسم ظاهر، زشت بوده مجبور و از زائدتون لازمتون پشتش بنویسید و این با میشه بای زائده لازم و با میشه بای زائده آقای اخفش میگه این حرف ها رو من قبول ندارم آقای اخفش میگه احسن حیکلش حیکلش عمر باشد معناش ماضی باشد اینا چی چیه میبوند. اینا هیش اونها هیکلش امره معناش هم چیه؟ امره معناش هم؟ امره یعنی لفظ مبین معناست. هست مگه میشه لفظ یه چیزی بگه معنه یه چیزه؟ دیگه لفظ مبینه معناست. هست لذا هیکل امر، معنه هم خب اگر امره فائلش کیه؟ میگه فائلش انتای مبینه احسن فیر انتا یه مقدر چیه؟ شخصه میگیم این فائل کیه؟ میگه هرکی رو که شما مخاطب قرار بگید. مثلا من به شما میگم احسن به زیدن به شما میگم یعنی بابا ببین چقدر زید زیداز زید. تو هم ترسیمش کن میتحجب میگه فائل شرکیه که مرضو مخاطر خب حالا احسن بیرش بیر متعدیه یا لازم اخواش میگه ممکنه همزهش همزه باشه ده همزه همزه تعدیه باشه یعنی زیباoper اگر همزش همزی تعدیه باشه دیگه باش بای تعدیه بگی میشه باش بای چی زیبه باش میشه بای زیبه و اون ضد محلا اگر همزه همزه تعدیه باشه مثل کارمه و بگه احتمال داره همزش همزه سیرورد همزه همزه چی باشه سیرورت. یعنی یک چیزی تبدیل به یک چیز دیگری شدن اگر خمزش خمزه سهی باشه دیگه متعدی نیست بلچیه لازمه لذا باش میشه بایه و میشه مفعوله به واسطه علا حال نزد آقای اخفش احسن فیره امره و در یک صورت مفعوله حقیقیه بیواسطه است چون بازارده است، اون جایی که همزه همزه تعدیه باشه در یک جای دیگه چی؟ همزه همزه و بابای تعدیه حالا و مفعولانه در لفتش و یل تعدیهته و زارده و این یا برای تعدیه است یا برای زیاده که میشه برای تعدیه میشه؟ موقعی که همزه همزه سیرورت باشه و همزه تعدیه نباشه و کی میشه زایده باشه آه. موقعی که همزش همزیه همزه باشه و دیگه این فیل, فیل متعدیه میتونه مفرور خودش برداره دیگه نیازه به با نداره این هم ترکیب آقای حق باشه و در احسن به زهنه پس دو ترکیب شون. یکی زه فارد بشه و یکی زه مفعول باشه و اگه مفعول بشه یا مفعولیه که باش زایده است یا مفعولیه که باش باید تعدیه است. در صورت زایده بودن همزه احسن میشه برای تعبیه، در صورت تعبیه بودن با همزهش میشه همزه سیرورا. هم. این ترکیب هایی که اینجا زیده